Al Bors Irans Radio In Dantra Radio ایران رادیو رادیو البورس بخش فارسی رادیو خارجیان شهر اوروس سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البورز امروز شنبه سیزده همه مرداد 1386 خورسیدی برابر با چارمه آگوست 2007 میلادی تا ساعت دو سی دقیقه بامداد میزبان شما دوستان هستیم زمان پخش برنامه راژیو البرز شمبه ها از ساعت 8 تا دو سی دقیقه بام داد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا یازده بام داد راژیو البرز از کانال دو راژیو آهوس روی موج اف ام فرکانس های 98 دو هفتاد و 89 پنجا مگاهرس پخش میشه شماره تلفن ما 86 18 0 9 و 8941 3955 آدرس الکترونیکی ما راژیوالورز ات و سایت اینترنتی ما ایران اینفو داد دیکو هست شما میتونید برنامه راژیوالورز رو از روی سایت اینترنتی ایران اینفو داد دیکو گوش کنید با ما باشید تا ساعت ده و سی دقیقه بامداد با امروز to bar و من تا آنجایی که یاد دارم در این دوران حراج بیدریغ وجدانها زندگی من سر سر زندگی من همچون زندگی همه آنهایی که هنوز حماسه بیداری وجدانشان تا سر حد فریبندگی یک قزل خواباور به ابتزال کشیده نشده است مشتی فریاد آسی که تلخی حقیقت زندگی شیرین خواب مرگ را از دیدگان تارشان از دیدگان همیشه بیدارشان بوده است تا سر حدی انفجار نابهنگام ناراحتم اصولا بنای احساسات من است تا سر یه حدی انفجار ناراحتم تصادفی نیست که حتی ناله در ناراحتی اثر من فریاد می کند تصادفی نیست که نوعی انتظار خسته چشم این چنین خسته انتظاری با نگاه حسرت بار در تکابوی دمیدن صبح دم فریادها از آلود به خون افق‌های در هم شکسته و در متن کلمات و جملات دستور ناپذیر من بیداد می می‌کند فارسی زبان مادری من نیست اما زبانی است که شیر سپیدش پشتیبانی بیچون چرای خون شجران نوشته آثار من است بر حسب ساختمانه های گذشته زندگیم بر حسب آنچه به من آموختند یکی از ملیون ها و ده میلیون انسان آشتی این زمانم این گناه من نیست که در قرنی چنین سرسام آور به دنیا آمدم در قرنی که نان گرست است. قرن ما صدف نیست ماسه است قزل نیست هم ماسه است سخن غرن مایه سیری علت هاست و سخنش جرس سپید دم بیداری ملت هاست بله کارو هم رفت کارو کسی بود که واقعا کسی بود که نقش کلیدی در بیدار کردن مردم از این فقر جهانی داشت او با سادگی به دنیا آمد و ما پاکی از این جهان رفت به روح پاکش درود بفرستیم در خفغان در آن زمان خفقان. او بود که مینوشت برای ما مینوشت که ما با فقر آشنا درود به روح پاکش می‌فرستم و می‌دانم که در آینده آثارهای او نایاب خواهد شد سرگردان این شهررم همدم گم گشت راجیم پسه ها دارد دلتر گم بش امشار سرگردان این شهرم هم دمیم هم گشته را جویم قصه ها دارد دل تنگم به شما این شب قصه شب از شبهای طاقستان ناشناسی از سفره من با نگاه پرغ و حروره خود آتش دازن درد جانم زد دور ازنا دنیای تاریکی ما دو مورده هم سفر بودیم تا پل از اندیشه یه فردا روز شب با هم به در بودیم یک شب بارانی پاییز آسمون رنگ جدایی زد اون سفر کرد از دیار من پا به عشق و عاشنایی زد آنده هم تنها سرگردم اونشان از من نمی گیرد رفتم از یاد او اما یاد او در من نمی سرگردانه شرم هم در میگم گشته را جویم قصه ها دارم دل تنگم به شایم شب قصه میگویم یک شب از شبهای طابستان ناشناسی از سفر آمد با نگاه پر غرور خود آتش ها در جانم زد دور از آن دنیای تاریکی ما در مورده هم سفر بودیم آفل از اندیشه فتا روز و شب با هم به در بودیم یا شما به دنبال خوشبختی هستید ریشه همه تنگی های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی و نظامی بیمهری است یا به عبارت دیگر در زیر همه تنگی ها کینه نه است کینه و رشت فرزندان آز هستند آز یعنی پیش از انداز خواستند در پیش از انداز خواستند انسان به زودی به انداز بی اندازه خواهی کشیده می شود بی اندازه خواستن یعنی انسان هایی که ظرفیت اون را ندارند و بی اندازه خواهی نه تنها بی اندازه خواستن در یک خواست است بلکه بی اندازه ها کثیر می شود و خواسته های بسیاری به وجود می آورد یعنی یک خواست در چند خواست می شود و از هر خواستی چند خواست هم می روید انسان ناگاهان در درونش گرفتار خواسته های کسیری می شود که از سوی همه با هم در تزادند و سوی دیگر چون پیش از اندازه خود میخواهد خواهد طبعاً به اندازه دیگران تجاوز می کند و به دیگران کین می و به دیگران جهان را تنگ می کند همیشه در بی اندازه خواهی نابود ساختن جانها نه است این تحول از به کین و نابود ساختن مهر است. از بن بردن مهره است که جهان را همه جهان را به تنگ میکشاند. کشاند. است که گشادی و فراقی و پیدایش برای همه به وجود می آورد. آنهایی که در خود تنگ می شوند با کین مرزهای دیگران را می بندند. تجاورد به مرزهای آنها می کنند. کین اصوی ایجاد حراس و بیم می کند. کنه از سوی ایجاد حاس رو بیم می کند از سوی دیگر ایجاد شتاب و تیزی می کند که همان توف سوزان اجدهها می شود. یا همان توف سوزان اجده ها می شود. از سوی جان ها را نابود می سازد و آزار به جان ها میرساند. همه تنگی ها از کینه بر میخیزد. پیکار با همه تنگی ها باید به شیوهی باشد. که برزده اصل مهر نباشد برای آفرینش دوباره مهر باشد برای آفرینش دوباره مهر باشد وگرنه کین ورزی زنجیروار تکرار می شود جهان و زندگی برای همه انسان ها تایم می شود و درد انسانی ابدی می ماند هدف هر پیکاری سر حد هر پیکاری همین نف کینتوزی است کین توزی رستاخیز دوباره مهر است. مهر یعنی دوستاشتن، عشق ورزیدن، برای خود و همه موجودات احترام قائل شدن. متاسفم میبینم، هنوز نتوانستم یه باد بزن پیدا کنم و خاکهای کینه را از دل و یا پاک کنم. و این جز پیش از انداز خاستن است، چاری هم جث تجاوز به حریم دیگران ندارند اول جهان را به خود تنگ میکنند بعد به خود صدمه میرسانند این افراد باید رستاخیزی به نام مهر را جانشین کینیز توزی خود کنند و از این پیشاندازه خواهی دست بردارند البته تا دیر نشده است البته تا دیر نشده است می لط تو بردوشا در خیاان سایه می پووشم روزز روشن خواب می بین خواب های ن می بین خواب Jo hi hoie ho tu mires شیدو سندی دیدم که بوتر پاسبان سخت دیدم که بی رنگی اسیره خام رنگی شو رؤشن خواب میدینم خواب های نمیتواند از آزوردن لذت ببرد. این لذت از آزار دیگران تکرار لذت درد بردن است و هیچگاه هم نهایت ندارد. مباش در پی آزار هر چه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. سخنان ایرج را حاوی بزرگترین ارزش های سیاسی ایران بدونیم آگاهانه یا ناآگاهانه به دست فراموشی نصپاریم. بنیان گذار حکومت ایران در استوره ها که از پاکترین احساسات و ایدوال های ایران, ایران است می گوید که من ایران و تج... تاج و تخت ایران را بدون مهر و مردم نمی خواهم مهر و مردمی را بر قدرت و داد تج... ترجیح می دهم باید کتابی به زخامت شاهنامه نوشت و این اندیشه ها را گسترش داد ایراج میگوید که من ترجیح میدم شیوه مردمی برگزینم شیوه مردمی آن است که هیچگاه جانوری را نباید آزرد با ملل دیگر مه بوزیم، با آشتی و دوستی زندگی کنیم و جز فرجام این گونه قدرت‌خواهی و بزرگی جز تیرگی به همراه ندارد اصل برابری جهانی برابری همه ملل هنوز این سخنان برای ما گیج و خنده‌دار و, و غیر جدی است این سخنان از دهان ابراهیم و مسی کاملا مفهوم داشت اما برای کسانی که حکومت ایران را بنا نهادند مانیفست ها را می نویسند سخنی آور است ما ایران دوستی جهان شروند دوستی را زشت میدونیم و بر ضد ملت خود بلند میشیم. شیم گفته که این طرز فکر مال انسان های بیوطن و خائن است می بپذیریم که آغاز حکومت ایران با چنین خائنان و وطن فروشانی شروع شد آیا شما هیچ حکومتی را سراغ دارید که ملک و مال مردم وطن خود را تاراج کند دور بیندازد به دیگران هدیه بدهد هر ملتی باید منافع بشری و جهانی را بر منفعت خود ترجیه بدهند این رج می گوید چون آین من درست بود و مردم من دین من بودن بزرگترین گناه نزد من آسیب رساندن به جان و به زندگی و تجاوز حریم دیگران است بگذاریم از این که تقریبا گوش ها شنیدن دارد کم می شود اما باید فروتنی را پیشه کنیم به فرزندان سرزمینمان احترام بگذاریم به آفریدن یک استوره تازه یک ملت، یک طبقه، یک حزب، یک جنبش تازه بیافرینیم ملت ایران منتظر آن است که این استوره ها از سر زاده شود و از سر خود را بیافریند و از سر بنیاد شود به هیچ وجه بازگشت به گذشته نیست به هیچ وجه بازگشت به دوران حقامنشی و ساسانی نیست بلکه تولد تازه است و دوباره زاده می شود وقتی ملتی دوباره زاده می شود خودش هست در ارج استقلالش هست خود را آزاد می کند هر خطری هر تهاجمی انقلابی استبدادی را به خود راه نمیدهد می شود صد بار کشت شد و دوباره به معنای آفرینش پیدایش از بون زاده شد انسان همیشه استوره ها فریده هست رولے صیدی سیرجانی که پیش از دو قرن طرف یعنی متخصصان اروپایی بررسی ها را کردند به آن دست یافتند اما ما هنوز در خم پیچھے یک کوچه ایستاده ایم منتظریم منتظر چی منتظر چی دو قرن است که اروپایی ها به این رسیدند ما چرا منتظریم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 امید که روزی بر جانون بروم گریه را تک کنم شد و غذا خو بروم با بد پایان آرزو ها سرکهغربت کنم و باز به ایران بروم ازثر شو که نان منتظره آن رو بوزم که بلخنده و با دیده گریان برادم آه سر پر دردم پر خدایا ماجزه ای کن من هم به ایران خودم هرگر من هم ایران خودم برگردم یوسف گم شده در چای غریب و پربانه به دیدار عزیزان برفم و بعد این خواست پایان آرزوهایم ترک غربت کنم و باز به ایران برفم از سر چنان منتظر آن رو که بلک خنده و با دیده ی گریان بره و برگزه خدایا ماجزه ای کن من به ایران خودم برگردم الهی ماجزه ای کن من هم یرون خدام برگردان <مترخن> نلئن خودبند دل ب خورد درد مورو از غربت سوی یاران باز گردان پراکند گلان بوسان را دوباره بر گلستان باز گردان خودبند جوانان وطن را به هوشه عزیزان باز گردان به قربت جمله ایرانیان رو دوباره سوی ایران باز کردم آه سردم پر دردم خدایا موجزه ای کن من به ایران خودم برگردم الهی موجزه ای کن من هم ایران خودم برگردم که به زادگاه خودم که براتون میخونم چه کنیم تا فرزندان خوشبختی داشته باشیم از دکتر واین وایر یا دایر و توران مالکی اون رو ترجمه کرده امیدوارم که جوان ها این کتاب ها رو بخونن و چیزهایی را بیاموزن هر روز درباره افرادی میشنویم که اسیر اندیشه های استرابش شدید شده خیلی را هم می که از داروهای آرامبخش، مواد مخدر، قرصهای خواهور یا ضد استراب یا ضد افسردگی خلصه هر داروی که ضد تشویش و حملات عصبی باشد به گونه استفاده می کنن و می خود را از این حیال که وجود خارجی هم ندارد نجات بدهند نگرانی حمله نمی کند این مردم هستند که عادت کردند با نگرانی به مسائل و محیط و اطراف خود را ببینند و بعد برای رهایی یافتن از این پدیده مرموز که نگرانی نام دارد به قرص متوسل شوند متاسفانه بچه ها هم در همین محیط لبریز از افکار یسالود بزرگ می شوند اما خودکشی در میان جوانان بچه ها بسیار زیاد شده است اما خودکشی در میان جوانان بسیار بالاست بچه ها وقتی بزرگ میشن به فشار خون بالا زخم میده شدید ناراحتی های اروغی میگرن مبتلا میشوند آنها در صنعت جدیدی به نام مدیریت فشار روحی شرکت جستند متخصص احسابم عادت دارد به جای اینکه نگران اندیشی علت بیماری را بداند فشار روحی را سبب بیماری قلم داد می کند شما می توانید شما والدین عزیز شما می توانید بچه های فارق از زیان های حاصل از یک زندگی پرش تشویش را بزرگ کنید هیچ لزومی ندارد کودک شما در شمار افرادی باشد که در بالا اشاره کردم بچه ها می توانند فارق از تشویش نگرانی زندگی کنند. کترکان را تشویق کنید که سالم اندیشی را پیشه کنند. به جایی که به بچه ها قرص والیوم استفاده از درمانگر قرص زده افسردگی پنا ببرند. آنها را از نگرانی دور نگه دارید. آینده بهتر را براشون آروزی کنید. بچه ها را از شکنجه های درونی دور نگه دارید که این شکنجه از خونه آغاز می شود. بالاترین مرحلهی که ما می توانیم به مقام انسانی دست پیدا کنیم یعنی کمال بی تلاشی را بیاموزیم با به آرامش رسیدن درون کودک می توانیم این کار را بکنیم ژاپنی ها این تجربه را به دست آوردن کسانی که به درجه از تکامل و رشد ذهنی می رسند دنیا را به صورت نهادی کامل مشاهده می کنند. مجموعی از پدیده های همه هنگ، عشق و سول، دوستی را به کمال می رسانند. از زشتی، دشمنی، نفرت می گریزند و آنها ستیز می کنند و نیروهای طبیعی آلم هستی را با تحسین و ستایش می نگرند. کنو قدیمی کینی جویی را از خود دور می کنند. وقتی انسان جهان را به راحتی میپذیرد به عنوان انسانی به نام عشق ورزیدن می رسد و به هرچی که نام هستی بر آن راه داده است و به عنوانی به نام عشق ورزیدن می رسد و به هرچی که نام حسی بران داده ایم ارج میگذارد از کینه و دشمنی دوری می جوید رسیدن به صفا و آرامش درونی سویی که در طی اقامت کوتاه در کره خاکی می توانیم آن را پیششه زندگی خود و فرزندان خود بکنیم. راینس که در سفر زندگی انتخاب می کنیم برداشتی از سفری که با اطرافیان داریم در تور سفر از قدرت اراده ای که داشتیم استفاده کردیم بگونه ای به فرزندان ما نیز آموخت ایم و توشه و همراه راه بقیه زندگیشان کرده ایم. در واقع این توشه جز آرامش درونی چیزی نیست باید به فرزندان خودمون بیاموزیم که تا آخر اوم پاک سرشتی را حفظ کنند مستقل هماهنگ کامل در جاده زندگی گام بردارند چیزی هم جز یک کلام به ذهن نمیرسد جز یک کلامی است که به ذهن میرسد و آن کلام عشق است. عشق به بچه ها به بچه های ما کمک میکند که به صفای باطن خود برسند شما با این اشت به فرزندان خود چیزی به نام مهر عاطفه را با در آغوش گرفتن متقابل همدیگر در آغوش گرفتن حرکات دلنشی نیست به بچه ها این رفتار سالم را بیاموزید و این حرکات دلنشی را هر روز با آنها تکرار کنید تنها راه این که بچه ها از تشویش و نگرانی دور شوند برخورد مهرآمیز با آنهاست شادی معنا و مخصود زندگی است و هدف همون هستی است باید گفته های عرصتو را باور کنیم که می این حقیقت را بپذیرید که شادی احساس درونی است که از روح جسم شما ترابرش می کند است که بتوان از مردم از تجارت به دست آورد می توانیم این شادی را احساس کنیم و تا آخر اوم از سمرات آن بهرمند شویم بچه ها در دوران بلوغ با آرامش و راحتی داشتن می توانند تا آخر عمر این روش را ادامه دهند. سه آمیله است که های نگرانی را در کودکان می افساید. احساس گناه، تشویش ها، فشار عصبی آنها را از فعالیت زندگی باز می دارد. این سقول زشتی ها هستند که فرد را نگران می سازند. اراده کنید، والدین اراده کنید این سزشتی را از فرزندان خود دور کنید. این به دست شما است که تا آخر اوم برای او زندگی شاد همراه با آرامش داشته باشد. به او هدیه بدهید یا او را به آینده بسناملوم به سپارید. والدین این سزشتی را از فرزندان خود دور کنید. این به دست شما است که یک زندگی خوب یک زندگی هم را با آرامش به او هدیه بدهید یا اینکه او را در آینده نامعلوم به سپارید او را به آینده نامعلوم بسپارید شما دوستان شنونده توجه شما را به اخبار امروز راژیال بارز جل میکنم بنابرای گزارش خبرگزاری ایتالیای آنسا یک کامیون حامل تحجیزات مورد نیاز برای غنیز سازی اورانیام که به مقصد تحسیصات حسیه اصفهان در حرکت بوده در ایتالیا توقیف شد کامیون مزبور متعلق به یک شرکت تجاری وابسته به رژیم تهران بوده در فعالیت های تحصیصات حسیعی ایران دخالت دارد بر اساس این گزارش معموله این کامیون دو کیلوگرم لوله است که با آلیاجی از کروم و نیکل ساخته شده و می حرارت بسیار بالا را تحمل کند در حکم داستانی ایتالیا در باره توقیف این معموله آمده است که این لوله ها در دستگاه های تبدیل اورانیوم خام مورد استفاده قرار می گیرند این کامیون از 16 اپریل گذشته یعنی 27 فروردین در یکی از ایسگاه های مرزی ایتالیا با سوئیس توقیف شده است وزیر امور خارجه مصر تیه یک مساحبه با اشاره به آتش افروزی های جمهوری اسلامی ایران در منطقه خابرمیانه گفت رژیم تهران در تلاش است تا با استفاده از مسائل مربوط به جهان عرب از خود حمایت کند بنابرای گزارش خبرگزاری مر در گفتگو وزیر امور خارجه مصر در گفتگو با روزنامه الشرقل اوسط چپ لندن گفت انور سادات رئیش جمهوری سابق مصر در آغاز جنگ داخلی در لبنان گفته بود دست از لبنان بردارید کلید حل مسئله لبنان به دست خود لبنانی هاست. وزیر امور خارج مصر افسود رژیم تهران با جهان قرب از جمله در زمینه ای مسئله هستهی مشکل دارد و تلاش می کند از طریق استفاده از مسائل مربوط به جهان عرب از خود حمایت کند وی گفت به این ترتیب ما شاهده تلاش های رژیم تهران برای استفاده از مسائل مربوطه به جهان عرب برای تحقیق ش... یافتن منافع و اهداف غیر عربی هستیم وزیر امر خارج مصر افسود ما به این رژیم تهران میگوییم این تلاش ها و روش ها تحصیلات منفی بر آینده منطقه خاورمیانه خواهد گذاشت بنا به گزارش خبرنگاری فرانسه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از کشورهای منطقه خواست برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای رژیم تهران به این رژیم فشار بیاورند وزیر دفاع آمریکا که به منطقه سفر کرده بود گفت در حال حاضر رژیم تهران مشغول فعالیتایی برخلاف منافع اکثر کشورهای خاورمیانه است به افسود علاوه بر آمریکا و عراق اقدامات رژیم تهران علی منافع همه کشورهای است که ما از آنها دیدار میکنیم وزیر دفاع آمریکا در سخنان خوشدارآمیز گفت واقعا اینجا جایی است که نمی‌توان فقط ناظر بود ما نمی‌توانیم سالها منتظر بمانیم تا رژیم تهران رفتار خود را تغییر دهد خراجگزاری فرانسه نوشت وزیر دفاع آمریکا در پایان سفر سروزه خود به منطقه در پاسخ به سؤالی درباره واکنش سران کشورهایی که از آنها دیدار کرده است گفت در ارتباط با نگرانی های ناشی از سیاست رژیم تیران هیچ اختلاف نظری میان موازه این کشورها نیست همزمان روزنامه گاردین چاپ انگلستان با توجب به فروش تسلیات آمریکایی به کشورهای عرب منطقه نوشت به گفته بسیاری از کارشناسان منطقهی هدف از این اقدام واشنگتن متقای ساختن کشورهای عربی سنی که به اینکه ایالات متحده درقبال بلا تکلیف امور در عراق و نیز تهدید رژیم تهران در کنار آنها خواهد ایستاد. این روزنامه همچنین نوشت اتهامات روز افسون آمریکا مبنی بر اینکه رژیم تهران اقدامات مخفیانه خود را برای بی سوابک کردن عراق متوقف نکرده این اعتماد را که اعیارت متحد دست به حملاتی علیه نیروی قدس سپاه پاسداران در ایران بزند افزایش داده است. سفیر آمریکا در عراق در گفتگو با سردبیران و مدیران روزنامه‌های عراقی در مقر سفارت آمریکا در بغداد گفت القاعده از هفت سال گذشته تا کنون در عراق حضور داشته است روزنامه الرشغ اور اوسد به نقل از سفیر آمریکا در عراق نوشت رژیم تهران از اعضای القاعده در اراق حمایت کرده و این شبکه ترور را مسلح می کند این دیپلمات ارشد آمریکایی گفت القاعده از سال 2000 میلادی از طریق گروهی انصارال حسنه یا اگر درست تلفظ کرده باشم در عراق حضور داشته است. انصارال حسنه در شمال عراق مستقر بوده و با رژیم تهران رابطی دارد و کمک های مالی و تسلیاتی از این رژیم دریافت کرده است سفیر آمریکا در عراق مشکلاتی با رژیم تهران در عراق وجود دارد که، این موارد را در نشست دو جانبه به آنها یعنی رژیم تهران گوشزد کردیم و وی این افزود ما منتظر تغییر رفتار رژیم تهران هستیم. سندیکای CGT یکی از بزرگترین سندیکاهای فرانسه با انتشار اطلاعی در اعتراض به سرکوب و دستگیری های اخیر در ایران بویجه بازداشت فعالان کارگری از جمله منصور آسانلو و محمود صالحی فراخوان به تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس داده است این تظاهرات روز پنجشنبه آینده 9 آگوست ساعت یک بعد از ظهر برگزار خواهد شد سندیکای CGT در اطلاعیه خود نوشت اعضای این سندیکا همبستگی کامل و همه جانبه خود را با زنان و مردانی که علا رقم سرکوب در ایران مبارزه برای آزادی را ادامه می ابراز کرده است. سندیکای CGT خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی به ویژه دو فعال کارگری منصور اوسانلو و محمود سالهی شد. تظاهرات سندیکای سی جی تی علیه رژیم جمهوری اسلامی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس در کشور فرانسه به به گزارش کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر حالی یکی از دانشجویان در بند در زندان اوین وخیم است مجید توکلی دانشوی زندانی که در اعتراض به عدم رسیدگی به پروندش و بلا تکریفی خودش دست به اتصاب قضا زده بود وارد 23 ومین روز اتصاب خود شد اعتصاب قضا یا توکلی در بند 209 زندان اوین در شرایطی صورت می که با توجب شرایط امنیتی حاکم در این بند امکان رسیدن اخبار در مورد شرایط وی به خارج از زندان به دشفاری صورت می گیرد با این حال به گفته خانواده مجید توکلی این دانشوی زندانی وی در مدت اتصاب غذا حدود دوازده کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است و اخبار رسیده نیست حکایت از انتقال وی به بهداری بند دویست و دارد اتحادی اروپا روز گذشته جمعه 3 آگاست نسبت به موج اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و خانه توقف حکم اعدام دو روزنانگار کرد شد کشور پرتغال که اکنون ریاست دوره ای اتادی اروپا را برعوده دارد در بیانی از جمهوری اسلامی ایران خواست که از اجرای حکم اعدام اطنان حسنپور و هیوا بوتیمار خودداری کند و تضمین دهد که این دو از حق حضور در دادگاه عادلانه برخوردار خواهن شد قوه جمهوری اسلامی ایران صدور حکم ادام برای دو روز نونگار ایرانی که به محاربه با خدا متهم هستند را تایید کرده است علی رزا جمشیدی سخنگوی قوه قضای جمهوری اسلامی در مسابه مطباتی گفته بود بوتیمار و حسنپور به جرم محاربه به اعدام با تناب دار محکوم شدن مهاربه از جرایم است که با واجهی ریشه گرفته از کتاب قرآن توصیف می شود و می توان آن را جنگ با خدا تعبیر کرد جمشیدی از اینکه آیا حکم اعدام این روزنابنگار به تعیید دیوانالی کشور است یا نه اظهار بی کرده است اطلاعی اروپا در این بیانیه نسبت به روند روبه رشد و فضاینده صدور حکم ادام تیه ماهای جاری و سرکوب اقلیت های قومی در ایران ابراز نگرانی کرده است در دور دوم ادام در ایران اول مرداد ماه سال جاری هفت نفر دیگر به اتام عرازل اوباش بودند در شهر مشت و در ملعه عام به دار آویخته شدند سعید مرتضوی داستان جلاد تهران در همین زمینه اعلام کرده است که صدور حکم اعدام برای 17 نفر دیگر از اراذل و اوباش در دستور کار قرار داده است. گزارشگران بدون مرز سازمان بین‌المللی مدافع حقوق کارکنان رسانه‌ای گروهی چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای درباره صدور حکم اعدام برای دو روز کرد ایرانی ابراز نگرانی کرده است از طرف دیگر بنابه گزارش بی بی سی وزیر خارجه فرانسه از ایران خواست از اعدام ادنان حسنپور و عبدالواهد بوتیمار یا هیوا بوتیمار دو روز نامنگار ایرانی خودداری کند اما کانون نویسندگان ایران در رابطه با اعدام های اخیر اطلاعیه صادر کرده است خطاب به آزادگان کل جهان است آزادگان روزگاری است که خبرها پی در پی از شکنجه و اعدام زندان و سنگسار و تعقیب و آزار است آخرین خبر تا لحظه صدور این بیانیه اعلام حکم اعدام برای دو روزنام و فعال اجتماعی عطنان حسنپور هیواب و است آیا سرانجام گفتن و نوشتن و سرودن در سرزمین ما باید مرگ باشد چگونه میتوان کسانی را به دستاویز اقدام علیه امنیت کشور به کام مرگ فرستاد که گناهی جز بیان آزادانه عقاید خود ندارد ما هشدار می دهیم که هیچ اقدامی علیه امنیت کشور فاجعه بارتر از حصف و نابودی نیروهای آزادی خواه مردمی و پیشرو نیست کانون نویسندگان ایران خواهان لقب همه احکام اعدام بویجه احکام صادر شده برزد ادنان حسنپور و هیوا بوتیمار است Come بخش نخست خبرهای امروز در مورد ایران به مسئله های اخیر در تهران و دیگر شهرها در ملعی عام میپردازیم همراه با دو گزارش از رادیو دوچه فلت آلمان و رادیو فرانسی نام ایران در روزهای اخیر در رسانه های جهانی با اعدام هفته گذشته همراه بود است یکی از رهبران سبسای آلمان گفت است انسانها را در نمویش های خیابانی حلقاویز می کنند ملت ایران فرهنگی عمیق دارد آنها نمی توانند ایران را به دوره بربریت بازگردانند روز چار گذشته ده مرداد ما هفت نفر موسوم به عرازل و عباش در محشت اعدام شدند. این دومین اعدام دست جمعی بود که طی ده روز گذشته اتفاق می افتاد. روزهای شنبه و یک شنبه گذشته شانزده نفر در زندان اوین به دار آویخته شدن. آنها هم به گفته یه مقامات داستانی تهران ارازل و اوباش بودند. جماوری ارازل و اوباش یکی از دو بخش تره به اصطلاح ارتقای امنیت ملی توسط نیرای انتظامی است بخش دیگر مبارزه با بدهجابی است مرتزوی داستان عمومی و انقلاب تهران ارازل و اوباش را اینگونه تحریف می کند آنها اشراری هستند، که مرتکب جرایمی چون شرارت زورگیری تجاوز به دیگران قمه کشی و آدم ربایی شدن علی رزای جمشیدی سخنگوی قبع قضایی روز شنبه هفته گذشته خبر محکومیت دو روزنامه گار کرد به اعدام را تایید کرد صبح پنجشنبه گذشته یازده مرداد ما متهمان به قتل قاضی مقدس اعدام شدند دو مرد جوان 28 ساله و 24 ساله در مقابل در دادگستری تهران حلقاویز شدن مرتضوی چندی پیش از اجرای حکم آنها گفت تا همین لحظه آخر این اشخاص به هیچ وجه از کرده های کار خودشون پشیمون نبودن و می که می آنقدر مسئول و قاضی در این مملکت بکشیم تا اشک رئیس قوه قضایه در بیاید اما در رابطه با همین دو مرد جوان 28 و 24 ساله متمن به قطر قاضی مقدس از مردم میخواستن که شماره از مردم که مردم تهران هنگام اعدام عاملان بهلاکر رسیدن یکی از قضاعت رژیم با فریادهای خشمگینانه و حوکردنهای متوالی تنفر خودشونو از این اقدام زده انسانی دستگاه قوی قضایی ابراز کردند. هنگامی که یکی از مسئولان رژیم با بلنگو از مردم حاضر در سرنه خواست همراه با اجرای حکم اعدام الله اکبر بگوگن و شعار مرگ بر تروریستو مرگ بر منافق سرد بدن مردم با حقوق کردن او تنفر و انزجار و خودشونو نسبت به این جنایت رژیم اسلامی ابراز داشتند. مرتزوی داستان رژیم در تهران خود شخصا بر اجرای حکم اعدام عاملان بهلا کرد رساندن معاونش نظارت مستقیم داشت و اعلام کرد که اونا قبل از اعدام گفته بودن ما از کرده کار خودمون پشیمان نیستیم. همونطوری که گفتم اعدام شده کار دو جوان 24 ساله 28 ساله بودن و یکی برادرزاده دیگری بود این دو جوان از ساکنان محروم جنوب تهران بودند که به اتحام کشتن قاضی مقدس از اوامل جنایتکار دستگاه قضای جمهوری اسلامی محکوم به اعدام شده بودند. و طبق اعلام قبلی ساعت ده صبح پنجشنبه در خیابان فراهانی تهران روباره مجتمع قضایی رژیم در ملعه عام با جرسقیل به دار کشیده شده این در حالی بود که رژیم وحش ازده از واکنش مردم محله را با انبوی نیروه نظامی و انتظامی به معاصره درآورده بود و از ساعت هفت و دقیقه صبح دو طرف محل اعدام را بسته بودند و حشرت عوامل رژیم جمهوری اسلامی به حدی بود که شماری از نیرای ویژه یکانه زده شورش نیز در محل حاضر شده بودند. تا چند لحظه دیگر دو گزارش از رادی فرانسه و رادی دوچه ولد آلمان تقدیم حضورتون خواهد شد ادام های تازه در ایران امروز خبر ادام عاملان قتل قاضی مقدس معاون داتتان تهران امراح با چاپ عکسی از آنها به هنگام اعدام منتشر شد اون که در این اعدام های تازه نظر رو جلب میکنه توضیحات سید مرتضوی دادستان تهرانه که در اسارات طولانی چندین اتهام دیگه هم به این قاتلان وارد کرد این در حالی است که محمد کاووسی فر یکی از اعدام شدگان به قاضی مرتضوی گفته به هیچ وجه از کرده های خود پشیمان نبوده و میخواسته اونقدر مسئول قاضی در مملکت بکشه تا اشک رئیس قوه قضاییه در بیاد او که در حال قرارابخته شدن هم می‌خندید این دو در این حال از کشتن راننده تاکسی و زنی که می‌خواستن خودروش رو بدزدن خودداری کردند حال نظر به اینکه در قضیه‌ای که شریک جرم وجود داشته باشه بار جرم احتمالا تقسیم میشه این فورچش رو مطرح میکنه که حکم اعدام البته اگر بگوییم که باید وجود داشته باشه چه مواردی رو آقای قاسم شولی سعیدی باید دربر بگیره به فرض این که حکم اعدام قابل قبول باشه حتی به موجب قوانین ایران و قوانین اسلامی برای یک نفر فقط یک نفر می شود اعدام کرد و اگر در عملیات اجراعی یک قتل افراد متعددی مشارکت داشته باشن یعنی فرض بکنید دو نفر با چاقو یک نفر رو بکشن به نحوی که این قتل نتیجه ضربات چاقوی باشه که این دو نفر زدن اون وقت باید یه یک نفر رو به اون دو نفر بدن و بعد دوتاشون رو اعدام کنن اگر اولی آدم بخوان ولی در این کیس خاص که با اصلاح داهرنغازی مقدسی کشته شده فقط یک گلوله بیشتر به اشون اصابت نکرده معنیش این است که مباشر قتل فقط یک نفر بوده اون نفر دوم حد اکثر میتوانسته معاون باشه نه شریک جور و اگر این فرض درست باشه چون من در جدیان مستقیم پرونده نیستم اعدام دو نفر غلط هست ولی جا این ایراد حقوقی به قضیه وارد است اما چرا این افراد اعدام میشن این روزها؟ به نظر من خود این افراد به نوبه خود قربانی این جامعه هستند یعنی سیستمی که ما به وجود آوردیم سبب شده که افرادی عنوان خوباش ارازد بنابرای ادعای مقامات به نوامیت مرضم تعدیه می در کشور ما به وجود بیاد کسی که به قتل قاضی اقدام می کنه یا نشونه تنفر بیش از حد اون از قاضی و از این سیستم قضایی ماست که مثلا در همین مورد خاص اون آقایی که داره اعدام میشه شه خمده هم می کنه و میگه گه اصلا هم پشیمان نیست یاد در شاه قضا رو طبان برای احقاق حق و استقرار عدالت نمی و وvndazao خودش دست به کار میشه تا مثلا حق خودش رو بگیره در همین اعدامایی که در مورد صدام حسین و سران رژیم بعث انجام گرفت در کنار صدام حسین فاجی دادگاه انقلابش هم اعدام شد مسئول اطلاعات و امنیتش هم اعدام شد یعنی وزاتما باید دقت کنن که این قضاوت در موردشون صورت بگیره که بگوین اینها عامل رژیم هستن و قانون رو رعایت نمی‌کنن قاضی باید تا به صرف قانون باشه تا به هیچ مقامی نباید باشه و یک اصل داریم اصل براعت هست اصل تفسیر به نفس متهم است و دید در بعضی از مواقع متاسفان ما شاید این هستیم که اخوان از جولانه صبر میشه و استاندازهای حتی قضایی خود ما راهایت نمیشه آقای شول صدی اگر قاتل یا قاتلان یک نفر باید اعدام بشن چه مجازاتی میشه برای کسانی ترین کرد که به دلیل سهلنگاری رنوان مثال در مورد هواپیمای سی سد که باعث مرگ بیش از ست تن شد در نظر گرفته بشه به خصوص در این مورد مسئولان تبره شدند باید اینکه یک جرم پاییز یک عنوان کیفری باشه اجتماع حداقل سه شرط لازم هست اقدامات فیزیکی که منجر به یک واقعه کیفری میشه عنصر معنوی یعنی داشتن سوء نیت و سوم اینکه یک فعل یا یک ترک فعل توسط قانون به عنوان جور شناخته شده باشه و برای اون مجازات هم در نظر گرفته شده باشه. لذا اگر ده نفر هم کشته بشود ولی کسی سوء نداشته باشه فقط قصور کرده باشه این در حد تخلف طلب میشه. تخلف اداری انتظامی در امور کیفری حتی قیاس هم نمیشه کرد. آقای شلهسدی پرسش آخر این که چی شده که این ادام ها بار دیگه در ملای عام انجام میگیرند و این عکسای فجی در همه سایت ها تقریبا توام با قورور این در حالیه که اکثر تحریبات انجام شده نشون میدن که مجازات اعدام یا ترس از اون تا کنون تأثیر بر کاهش جرائم نداشته در هم که مجازات اعدام رو لغم کردن آمادشان میده جرائم افضایش پیدا نکرده است اما این که چرا حالا نشون میدم یک هدف سیاسی پشت این است ما در این ماه های اخیر شاهده بعضی تحرکات دانشوهی، کارگری و حتی معلم ها بودیم چون حکومت این احتمال رو میداده که مثلا اگر تعدادی از معلمین و غیرو بخواهم تظاهراتی بکنن ممکن است این افراد که تعداد شدن زیاد هست و تحت انوان اونگواش ارازل و این جورسیز ها نامگذاری می شن به اونها به اون وقت یک جمعیت زیادی خواهند بود که حکومت دیگه نمیتونه به اونها برخور بکنه با نوع وحر و چشم گرفتن و ایجاد روح و وحشت از گسترش این نوع احتراسات جلوگیری بشه ضمن این که ممکن است واقعا اینها ها مجرم باشن و مجازات قانونیشون هم همین چی باشه خیلی قضا تو سپاس کذارم آقای قاسب شول سعدی و باید اضافه کنم که شما وکیل دادکستری و استاد دانشگاه هستیم Thank you. توزش از شما منتظر گزارشی هستیم از راژیو دوچفلت آلمان در مورد اعدام های اخیر در ایران که راژیو صدا آلمان گفتگویی داره با رادیو آلمان گفتگویی داره با رئیس جامعه دفاع و بشر عبدالکریم لایچی تا چند دقیقه دیگر برای شما پخش میکنم تو این جایی بگو گمش ستاره بگو شب تا دلش میخواد بباره دوباره رخت قریانی به تن کن بگو آین شد دوباره تو این جایی بگو گمش ستاره بگو شب تا دلش میخواد بباره دوباره رخت اریانی به تن کن بگو آینه مکررشه دوباره کنار تو فره آواز قلبم قزل بارونه جانم از حضورت به من تا میرسی گل میده لحظه گلستون میشه ساعت از عبورت یه شب کوچه های پرس و پرسه منو پیدا کن از هنگوپ آباز جنار مرگ خاموش کبوتر منو پیدا کن از رویای پرواز <موسیقی> تو این جایی بگو گمشه ستاره بگو شب تا دلش میخواد به دوباره رخت بریانی کن بگو آینه مکرر شد و نورانیش اسمم به من برگرد خورشید شبانه که من دیوانه شم از خواستن تو جهان رنگین کمون از ترانه به من چیزی بده از ماه و شبنم به من چیزی بگو از ماه و ماهنی دان کنتا که در باششه بر رویام از شبستان تباری کنار تو پر آبازقللبم قزل بارون جادم از گذورت به من تا میرسی گل میدهلح گل سون ساعت شب کوچه های پرس و پرسه منو پیدا کن از انتوپ آباز جنار مرگ خاموش کبوتر منو پیدا کن از رویای پرواز <تصفيق> تو این جایی بگو گمش ستاره بگو شب تا دلش میخواد به دوباره رخت فریانی به تن کن بگو آین مکررش دوباره بگو آین مکررش دوباره بزارش رادیو دو بلد آماده نیست اگر تا پایان خبرهای امروز آماده شد تقدیم حضورتون میکنیم اگر آماده نشد فردا به آقای شما خواهد رسید میپردازم به دیگر خبرها در مورد ایران اکبر گنجی نویسنده و روزنومنگار و منتقد جمهوری اسلام ایران برنده امسال جا... جایزه آزادی جان هامفری شد. سازمان حقوق و دموکراسی این جایزه معتبر را که هر ساله به یک نهاد یا شخصیت فعال در راه دموکراسی حقوق بشر اهدا کند دلیل خود را برای انتخاب اکبر گنجی، تعهد شجاعانه او به حقوق بشر، توسعه دموکراتیک و عدم خشونت عنوان کرده است. تعهدی که الهام بخش هممیهنان او بوده است. اکبر گنجی از مخالفان سرسخت سیستم حکومتی ولایت فقیست وی پس از شرکت در کنفرانس برلین و بازگشت به ایران به تام تبلیغ علیه نظام به شیش سال حبس محکوم شد گنجی که پیش از محکومیت در مقالات مختلف و همچنین از جمله با انتشار کتاب ماننده تاریخ خانه اشبا آلی جناب سخبوش و آلی جنابان خاکستری در رابطه با قتلای سیاسی موسوم به قتلای زنجیری به افشارگری پرداخته بود در زندان نیز به پجویش های خود ادامه داد حاصل این تعملات و پجویش ها منیفست جمهوری خواهی بود که گنجین در آن نظام حکومتی مبتنی بر ولایت فقی را به تمامی رد کرده و به تبعین نظام سکولار و جمهوری تمام عیار مورد نظر خیش پرداخت. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت بیماره مالاریا در زاهدان که در پی وقوع طوفان گونو ایجاد شده سلامت 300 هزار نفر از ساکنان این مناطق را تعدید میکند. حسین علی شهر یاری افزود افزایش 25 درصدی مالاریا نسبت به ماه مشابه به دلیل وقوع طوفان گناه و تجمع آبهای سطحی در مناطق سهل زده موجب افزایش و تکثیر پشه شده که همونطور که قبلا اعلام شده رسیدگی به موقع و مناطق وزارت بهداشت و مسئولین زیرت جهت تمنی آب آشامیدنی سالم، آب آشامیدنی سالم ضروری است. به گزارش خبرگزاری ایستنا ده تن از ده وست شدگان فراخان اینترنتی اجرای کنسرتی در کرج دستگیر شدن. فرمانده انتظامی استان تیران در این باره گفت این اولین بار است که دهها شرکت کننده دختر و پسر، با شیوه جدید فراخان بینانمللی اینترنتی به چنین مراسمی دعوت شدند به طور که اغلب دستگیر شدگان از جوانان و تعدادی از اونا ایرانی های مقیم خارج از کشور بودند که با هدف شرکت در یک کنسرت گفته میشه شیطانی رایی این مراسم شدن به یه افزود که تعدادی از, خانند... از این خوانندگان از معروفترین اجراکنندگان مراسم های مختلف بودند که تا در میان آنهای خواننده زن به نام گلاره گروه وحید دیجی و همچنین راک دانیال مارال رپ و خانندهی به نام اسلان شناسایی و دستگیر شدن که با ده ها دستگاه ایکو باندهای اجرای کنسرت های بزرگ در کرج در حال اجرای برنامه بودن فرمانده انتظامی استان تهران ادامه داد این اولین است که دعوت برای شرکت در یک مراسم پارتیگونه از طریق اینترنت به شکل بینال مللی پیگیری شده است. به طوری که دستگیر شدگان در جریان بازویی ها معترف شدند که برای ورود به این مراسم در کرج کارت های ویژه ای را در اختیار داشتند و بدون این کارت یا بدون این مجوز کسی نمی توانست به مراسم را پیدا کند. وی گفت برگزاری این مراسم یک عملیات کاملا سازمان یافته بوده است. چرا که گروه مجری تعدادی معمور را اطراف محل برگزاری مراسم در یک باغ در کرج به کار گرفته بودند؟ تا با پوشش دادن خیابان های اطراف هر گونه خطر اعتمالی را زیر نظر گرفته و در صورت مشاهده پلیس یا افراد کنشگاه سریعا در جهانت پاکسازی مراسم از وجود بیش از 150 بطر مشروعات الکولی 800 سیدی مواد مخدر 86 گراس و لباس های نیمه آریان وارد عمل شود رئیس پلیس استان تهران همچنین گفت ما نزدیک دهم ده مرداد ماه یعنی یک روز پیش از اجرای مراسم پلیس از طریق عوامل اطلاعاتی از موضوع برگزاری چنین مراسمی اطلاع حاصل کرد. اما گروه سازمان دهنده این مراسم به طریقی برنامه کنسرت را پیشبیی کرده بودند که تا ساعت قبل از اجرا هیچ یک از افراد دعوت شده از محل برگزاری جشت اطلاعی نداشتند پلیس استان تهران با شناسایی محل پس از هماههنی با مقام قضایی و کسب مجوز ورود به محل جهت دستگیری شرکت کنندگان اقدام کرد وی افزود که تعداد زیادی از این شرکت کنندهگان دختر بودند به گفته پلیس با لباس های به شدت غیر متعارف در مراسم شرکت کرده بودند و به دنبال مصرف شدید مشروبات الکلی و مواد مخدر در حال برگزاری مراسم به گفته که پلیس لحل و لحپ بودند. وی با اشاره به کشف بیش از ده دوربین به کار گرفته شده در باغ محل اجرائی مراسم پارتی گفت به نظر میرسد برگزار کنندگان به دنبال استفاده از تصاویر گفته میشه شنی این مراسم بر روی سیدیا جهت انتشار و فروش بودند چرا که معموران پس از ورود به محل باغ موفق شدن تعدادی از دوربین های فیلمبرداری را در حال فیلمبرداره بودن در محل کشف کنند به لهر خبرگذاری ایثنا ادامه میده در حال حاضر تمام دستیل شدهگان در پلیس امنیت استان تهران در حال باری درباره نحوه ورود به مراسم نوع ارتباطات بین گریی و بررسی سوابقشون هستند و فرمانده انتظامی استان تهران نیز اعلام خبرهای عاتی را به بررسی نتایج تققات پلیس منود کرده است. که یادآوری می‌کنم که بیشتر مهمان های شرکت کننده در مراسم کنسرت در باغ کرج بیشترشون جوانایی بودند که در خارج زندگی می‌کردند برای دیدار اقوامشون به داخل ایران رفته بودند اینم از این می‌پردازیم به حادثه خونین رانندگی در جاده ساوه تلویزیون جمهوری اسلامی حادثه رانندگی در محور ساوه و همدان رو نو کشته بر جای گذاشت اعلام کرد. فرمانده نیرو انتظامی ساوه گفت در این حادثه که با امداد روز جمعه بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با اتوبوس در کیلومتر پنجای محور ساوه همدان به وقوع پیوست هفت نفر از سرنشینان اتوبوس و دو نفر از سرنشینان کامیون کشته و پانزده نفر مجروع شدن. گفتنیست که جاده های ایران تحت آکیمیت جمهوری اسلامی جزو خطرناکترین جاده های جهان به شمار می و سالانه نزدیک به سی هزار نفر در اصل تصادفات مقبار جادهی در ایران جان خود را از دست می دن همایش روز جهانی جمعیت با حضور مسئولان، کارشناسان و متخصصان جامعه شناسی و جمعیت در تالار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد. دکتر منصور سلطان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این مراسم هشدار داد که نسبت به افساهش جمعیت در ایران وی گفت در حالی که میانگین رشد جمعیت در دنیا تا 80 سال سه برابر بوده است اما در ایران با امکانات کم رشد جمعیت در این مدت, مدت هفت برابر شده است که این امری غیر قابل حنجار است. در ی... یکی از بیمارستان دولتی کرمان کارکنان آن احتساب کردند. و آخرین که خیلی جالب است خبر آخرمون تقریبا میشه گفت شپ خبر است. یک جوونی سگش در تهران گم شد، آگاهی داده بود در روزنامه و پلیس اومد این جوونو دستگیر کرد. به نام نوشته روزنامه اعتماد ملی پسر جوونی که سعی داشت با چسباندن پوستر به دیوارهای شهر سگش را پیدا کند، توسط پلیس بازداشت شد. روزنامه اعتماد ملی میگه که از یه آگهی عجیب خبر داد که در آن پسری با چسباندن یک آگهی رنگی به دیوارهای خیابان انقلاب اسلامی تهران برای کسی که سگش را پیدا کند مجدگانی سی ست هزار تومانی در نظر گرفته بود این پسر جوان پیش از این اقدام به کلانتری 129 جامی رفت و از رئیس این کلانتری برای پیدا کردن سگش کمک خواست سرهنگ حمید شفیهی به وی گفت پلیس نمیتواند در پیدا کردن سگ به شما کمکی کند اما اگر احساس میکنید توسط کسی روبوده شده پولیس میتواند وارد عمل شود پسر جوان برای آفتن سگش اقدام به چاپ پوسترهای رنگی و نصب اونا به دیوارهای خیابان انقلاب کرد پس از چسباندن چند پوستر مهموران کلانتری 148 انقلاب به سراقش آمده و او را بازداشت کردند. این جوان چندین ساعت بازداشت بود و سرانجام با عقص تحهد برای متوقف کردن چسباندن آگهیش آزاد شد در مورد این موضوع به گفته روزنامه اعتماد ملی تلاششان برای تماس با رئیس کلانتری 148 انقلاب به جایی نرسید ولی مهدی احمدی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تخت در این مورد به خبرنگار روزنامه اعتماد ملی گفت این کار اشاعه فساد است افرادی که این آگاهی را می‌بینند به نگهداری سگ تشویق می‌شوند و پلیس به همین خاطر این جوان را بازداشت کرده است صاحب سگ پسر جوان به خبرنگار گفت ارزش سگ گم شدم کمتر از صد هزار تومن است ولی چون دلبستگی زیادی به او یعنی به سگ داشتم این مبلغ را یعنی سی صد را برای مجدگانی در نظر گرفتم موسیقی وطن نه نختهی بر روی نقشه بلکه جایی در ذهن ماست گفته یه الیزابل آلنده او آنگاه که در نو سالگی دفترچه خاطرات هدیه گرفت نوشتن سبک زندگی او برای همیشه شد با نظم می نویسد می نوشتن به من کمک می کند نظمی در زندگی روزمرم به وجود آوردم وقتی همه چیز سری و شلوغ پیش می روید همه چیز به هم ریخته است و می نویسم حتی وقتی داستان دیگران را می نویسم که ربطی هم به زندگی من ندارد این احساس را دارم که دارم زاویه ای از زندگی خودم را درک می کنم در نوشتن همه چیز روشن می شود الیزابل آلنده در دومه آگوست 1942 میلادی با عنوان اولین فرزند خانواده یک دپلومات شیلی توماس آلنده در شهر لیمیا پایتخت پرو به دنیا آمد در سه سالگی پس از جدایی پدر و مادرش مادرش به همراه الیزابل و دو فرزند خورسال دیگر به خانه پدری در سانتیاگو در شیلی بازگشت وقتی الیزابل 11 ساله بود مادرش با یک دخوامات ازدواج کرد در این سال الیزابل به حمله خانوادش به شره لا... لاپاز رفت خانواده الیزابل از 1956 تا 1958 در بیروت زندگی میکرد الیزابل در این کشورهای متفاوت در مدارس خصوصی انگلیسی زبان تحصیل می‌کرد. در 1958 به شیلی بازگشت و اونجا تحصیلات خود را به اتمام رساند و از 1959 تا 1965 در یک مؤسسه وابسته به سازمان ملل کار می‌کرد. الیزابت آلنده از هیچ ده سالگی به عنوان خبرنگار و مجری در یک کانال تلویزیونی شیلی کار می‌کرد. در 1962 ازدواج کرد و سال بعد صاحب دختری شد و پسرش در سال 1966 به دنیا آمد در سال 1965 برای تحصیل در ژنو، در بروکسل و بروکسل به سر برد در سال 1967 به همراه زنان دیگر مجله فمینیستی را در سانتیاگو بنیان گذاشته و 1968 سردبیر مجله شد در سال 1970 پسر اموی پدر او در شیلی به روی کار آمد سالواردار آلنده در سال 1971 نمایش نامی از او در سانتیاگو به روی سحنه رفت که با موفقیت همراه بود در سال 1972 برنامه مختلفی در تلویزیون سانتیوگو اجرا میکن از جمله گفتگو با الیزابیل آلنده که مجموعه ای از مساحبا و گزارش و بحث بود تا سال 1975 چند کتاب کودک از او منتشر شد مدت اینی ای سردبیر مجله فیلم بود پس از کودتای خونین پینوشه علی دولت آلنده در 11 سپتامبر 1973 مدتی در شیلی بود در سال 1975 به کاراکاس ونزوئلا به تعبیه رفت و در آنجا به کارهای مختلفی برای تامین زندگی پرداخت از 1976 تا 1983 به عنوان خبرنگار آزاد در روزنامه آل ناسیونال کار کرد انگامی که در سال 1981 از فوت پدر بزرگ 99 سالش با خبر شد شروع کرد به نوشتن یک نامه طولانی به او. این نامه زیربنای بنای رومانی شد که در سال 1984 به نام خانه اروا زیر چاپ رفت. این رمان چند دعی زندگی یک خانواده را ترسیم می کند. عشق و نفرت انتقام و مرک. این رمان خیلی زود معروفیت بین المللی یافت. میلیون ها نسخه از آن چاپ شد پس از آن چند کتاب کودک و سپس دومین رمان او به نام از عشق سایه ها منتشر شد. الیزبل آلنده به خاطر این رمان ها جواعز بین المللی دریافت کرد و از جمله در آلمان کتاب او تحت عنوانه که کتاب به عنوان کتاب سال، انتخاب شد و دو سال پی در پی برای دو رمانش به عنوان نویسنده سال انتخاب شد بلاخره خصوصیات دیگر الیزابل آلنده و در مورد دخترش و پسرش و همچنین تحصیلاتش متاسفانه وقت یاری نمی که برای شما بخونم اما کتاباش در ایران نام نامی برم الیزابیل آلنده در ایران نویسنده شناخته شده است ر های او با استقال خوانندگان روبرورو شده است. تا کنون از او ده کتاب به زبان فارسی ترجمه شده. دو تا از کتاب های او با دو ترجمه متفاوت و از دو نویسنده به بازار کتاب آمده است. از کتاب های ترجمه شده او می از رمان های خانه اروا از عشق سایه ها نقش رنگ باخته دختر بخت تصویر کنه شهر جانوران نام بارد querimen aba el jounel li chequi chesote a chaira no aba moyam talisellen be chao me gutan ara nei beni کسی از هموطنان از من میخوان که به جای خواندن مطلب تجروه های زندگی سالهای دوری از وطنم آنچه بر من گذشته و آنچه که دیدم رو براشون تعریف کنم خدمتتون رو کنم که شاید همینجور باشد بر من بیشتر گذشته باشد اما مطمئن باشید که خواسته شما رو من هر ندیده نمیگیرم و برای خواسته شما روزای شنبه اینجا میام مطالبی که انتخاب میکنم در حول و حوش آن چه میبینم و میشنوم انتخاب میکنم مثلا هفته گذاشته در جای حضور داشتم که میگفتن خیام یه میگسار بود وزیفه من اینی که من حتما یه مطلبی از خیام تهیه کنم و حتی یک نفر اگر طرز فکرش نسبت به خیام این چنین است رو کمی جابجاش کنم با این وقتی کمی که ما در رادیو داریم سعی میکنیم که وقت بیشتری استفاده کنیم یعنی مطالب بهتری داشته باشیم از لطف همه شما به رادیو به ما یعنی همکاران رادیو در کنار آقای مصطفی شکری که مسئولیت رادیو را دارن سپاس خود را تقدیم شما میکنیم باشد که این جامعه کوچک بتونیم هدفهای بزرگ خود را به اجرا بذاریم هدفهای بزرگ ما رسیدن به یک زندگی در حد سزاواری یک انسان با فرهنگ با سعی کوشش هم باید به دست بیاریم این وظیفه اصلی همه ما یعنی من و شماست که این از این فرهنگ حفاظت کنیم خیلی مطلب کوتاهی راجع به خیام میگم و در آینده مطلب بسیار طولانی براتون از خیام میخونم و تقدیم میکنم به این هموطن نازنین که میگفتن خیام یه میگسار بود آنچه روی خیام را میخورد اندیشی مرگ و حیات و پس از آن بود او جوابهای مذهبی را به ریشخند می گرفت برای راهی از فکر مرگ رو به مسی سر به محشوق می نهد خیام علاوه بر شرک که در نجوم ریاضی نیست دست داشت کار علمی به او کمک می کرد که مسائل فلسفی را بدور از پیشتاوری های مذهبی بیندی شد رواهی زیر از تأثیر علم و نجوم در تفکر فلسفی اوست او میگوید مک نیرویست که هیچ آدمی را از آن رهایی نیست بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد در خوردن آدمی زمین سیر نشد مغرور بدانی که نخورده تو را تجلیل تحجیل مکن هم بخورد دیر تو را. او میگوید انسان پس از مک تبدیل به خاک می شود. هر مشت خاک یادگاریست از یک انسان در گذشته اگر آب چو آب خاک را بردارد تا هشت همه خون عزیزان بارد میگوید آدمی نمیتواند در واقعیت از مرد بگذرد خیام خیلی چیزا را نمیپذیرفت به قول قدیمی ها او یک فیلسوف طبیعی بود به قول امروزی ها تابع روش علمی بود در روای زیر پشمردن گل لاله هورک بر بی‌پایگی رستاخیز انسان میخور که به زیر گل بسی خواهی رفت بی نونس و بی رفیق و بی همدم و جفت زنهار به کس مگوت و این راز نهفت آن لالهی که پش نخواهد بش گفت خیام میگوید برای شادی خاری باید زنده بود انسان مرده نمیتواند شادی کند یک نفست زی زندگی گذرد مگذار که به جز شادی گذرد. میخور که به زیر گل بسی خواهی رفت بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت زنهار به کس مگو تو این راز نهفت آن لالهی که پج نخواهد بش گفت برنامه امروز نزدیک شدیم یادآوره میکن که برنامه روز یک شنبه از ساعت 8 بام شروع میشه تا ساعتی یاده بام ادامه خواهد داشت. برنامه فردا آقای رسول توتووع حضور ندارن به جاییان گفتگوی آقای علی کشگر با رادیو صدای ایران در مورد تولات اخیر ایران و منطقه با این رادیو گفت کرده است برای شما پخش می کنیمیم علمی داریم از خانممه، گیلانی و پیشگامان موسیقی ایران هست که فردا تقدیم حضورتون خواهد شد و همچنین آخرین خبرهای ایران و جانو فردا به آگاه شما میرسونم بله مطلبی داشتم که آیا ممکن است تونی تونی این است که هر روز بین دو نفر رد و بدل میشه و چه توابود نیست بین این که ما به یکی میگیم آیا ممکن است تو میتونی امیدوارم هفته های بعد اینو براتون حتما بخونم و بسیارا مهم است بایدونی که ما بتونیم در این جامعه کوچک در این قربت سخت زندگی را برای فرزندان خودمون آسون کنیم تا آنها در هر جامعه به آرامش درونی خودشون برسن خونه رو دوست داشته باشند دوست داشتن خونه دوست داشتن همه آنچه است که در اطراف آنها هست حتی موفقیت موفقیت به دنبال آنها هست نه آنها به دنبال موفقیت توی ایرانی توی ایرانی ایران ایرانی پایدار باشد قصه دارم براتون برای خواب بلند شباتون قصه از یه خواب و رویا یه سفر توی جاده های سبز و بیخطر سفری با بال قصه به گذشته های دور بازی های کودکانه ماهی و تنگ بلور روزای گرم تابستون بود و گرگم به هوا بازی قای موشک دو گروه سوا سوا خلاصه شبا وقتی ستاره در می اومد لحظه های شادی و خنده ما سر می اومد تیک تیک لحظه ها آبم می قصه کودکی